داستان سوم آبگوشت آلوچه وقتی به کوچه رسیدیم ننه که توی حیات پای حوز زرف میشست داد زد هله هونه نخریده شکمتان درد میگیرد پولتان را بدهید خرما یا چیزی که سیرتان بکنه خوابالود و خسته به راه افتادیم آفتاب تازه به لب بام های بلند و به نک چنارها تابیده بود گنجشکها سر و صدا میکردند از روی پشت بام های دور پشه بندها در زیر نور خورشید میدرخشیدند و چشم ما را میزدند هر سه یازه می کشیدیم. تابستان بود اما هنوز سوز سرمایی از ته کوچ های آب پاشی شده به تنم میخورد دلم شور میزد سردم بود و تنبل بودم دلم میخواست برگردم به خانه و بخوابم دستهایم را زنبه ناسور کرده بود صاحب ما در بالای شهر خانه دیگری می‌ساخت. من و اکبر و از خرمی رفتیم و برایش کار می کردیم. خاک غربال می کردیم. آجر و خشت جلو دست بنا می بردیم سنگ میکشیدیم و با زنبه نخاله برای پر کردن کف و اتاقها جمع می کردیم صاحب خانه قول داده بود که دست آخر پس از تمام شدن خانهاش برای هر کدام ما یک دست و شلوار بخرد هر روز ننه پول نهارمان را میداد و روانمان میکرد. از میان تیمچه که می با دیدن سینی های بامیه پایمان سست میشد می شد می نشستیم کنار سینی بامیه فروش برچ پول داشتیم میدادیم و بامیه می خوردیم و تا شب گرسنه و بی پول به سر می بردیم ننه با کار خیاتی خرج خانه را در میآورد. آورد خوهر ازرا هم کمکش میکرد. بابا رفته بود باغ اجاره کرده بود تابستانها کارش همین بود عذرا شب با لحن بچگانه و شیرینی به ما میگفت وقتی نهار میخوریم ننه میگوید آخ خدا کاش دوتا بال داشتم و الان میپریدم و این ماستخیار را میبردم برای بچه هم. آخ الان توی آن خاک و خل چه میکند خدا کند مریض نشوند. ننه نمیدانست که ما همان صبح زود پول مختصر را خرج میکردیم و تا عصر برای پول درآوردن به هر دری میزدیم یکی از راههای درآمدمان بردن تشت خمیر به نانوایی بود زنی بود که خودش خمیر درست میکرد و میبرد به نانوایی تا برایش نان ای بپزند اکبر تشت خمیرش را رو روی سر میگرفت و میبرد نانوایی و دو ریال میگرفت اسغر هم کاغذهای سیاه توی کوچه ها را جمع میکرد و میبرد برای امو یوسف بقال و دو ریال هم او میگرفت یک روز امو یوسف وقتی ها را ورق میزد یک فزله درشت مرغ لابلای ها پیدا کرد و دیگر از ما کاغذ نخرید ظهر خسته و گرسنه می نشستیم و با نان کمی که داشتیم سرمان را گرم می کردیم عمو یدالله که عمل بود هر روز ظهر تالبی می خرید یک روز دورش نشسته بودیم تالبی را شکست و از هم باز کرد طالبی کرمو بود تویش سیاه شده بود خندیدیم و امویت الله عصبانی شد و گفت دفعه دیگر طالبی نمیخرم. چرا چیزی نخرم که چشمم خوب آن را نبیند ها انگور میخرم. شما هم کمتر بخندید مگر تا به حال طالبی کرمو ندیده اید سپس طالبی را دور انداخت و ما آن را برداشتیم و خوردیم روز دیگر که خیلی گرسنه بودیم. پسرک یک پاکت پر از خورما دستش بود و از کوچه می گذشت پسرک و شلوار قشنگی پوشیده بود و موی بلندی داشت خرما شکم گرسنه ما را تحریک کرد اکبر گفتم می توانی خورما را از دستش به قاپی و فرار کنی؟ اکبر آبه دهانش را گورد داد و گفت آری آری داداش جان هم الان میروم. اکبر موزیانه جلو رفت و از پسرک پرسید آقا خانه آقای اجاغزاده کجاست؟ پسرک تا آمد تماشای اطرافش بکند اکبر پاکت خورما را قاپید و فرار کرد پسرک با داد و فریاد به خانه رفت و مادرش و چند نفر از اقوامشان رو آورد از ترس می لرسیدم. پسرک رو کرد به من و گفت یک پسر بیرن سرخ بود دی همین خانه کار میکرد کجا رفت؟ من گفتم نمی اصلا اصلا را نمی شنستم. اکبر از آن دورها از کنار دیوار سر میکشید و من او را میدیدم. پسرک با مادرش رفتند. ولی اکبر تا غروب همان دورها ایستاده بود و جرأت نمیکرد پیش ما بیاید. اسقر صندوق چوبی کوچکی داشت که استاد بنا اسمش را گذاشته بود صندوق بدبختی. چون چند که نان خشک درون صندوق بود و همیشه بر سر صندوق بین ما دعوا و زد و خورد درمی‌گرفت. صندوق را از خانه با نان بیات پر می کردیم و به محل کارمان می بردیم بعضی وقتها هم اسخر سوسکی یا ملخی را می گرفت و توی صندوق بدبختی می گذاشت. شب خاکالود و خسته به خانه برمیگشتیم و با اشتها هر چی در سفره بود می خوردیم اسخر لغمه از گلویش پایین نرفته خورخورش بلند می شد و ننه او را روی دست بلند می کرد و می برد توی جا می گذاشت. و دار برایش میخاند ای کوچولوی نانآورم ای گربه خاکالودم هربان دست های زبر و ترک خوردت بروم عزیزکم شب که میخوابیدیم دلم میخواست هیچگاه بیدار نشوم. صبح زود دوباره با زور بلند میشدیم و به راه میفتادیم یک روز ظهر غمگین کنار دیوار نیمه تمام ساختمان نشسته بودیم هوا دم کرده بود دهانم مزهی خاک میداد. اکبر چشمش سرخ شده بود و درد داشت. یک قنچه آهک ترکیده بود و به چشمش افتاده بود. گرسنه و بیحال بودیم. بنا و ها نشسته بودند و توی اتاقی که تازه سقفش را پوشانده بودند نهار می‌خوردند. خورشید وسط آسمان بود. مردی در میان کوچه یک تکه یخ روی روزنامه گذاشته بود و تند میگذشت. ناگهان زن چادر سیاهی را دیدم که به حیات میآمد از دور به من اشاره می کرد. نزدیکش شدم. ننه بود. سرخ شده بود و عرق از سر و صورتش میریخت. آن همه راه پیاده دلواپس شدم. ننه چادرش را کنار زد و از زیر آن دستمال بستهای بیرون آورد و به من داد و گفت امروز آبگوشت آلوچه درست کرده بودم. هر چه کردیم نتوانستیم تنها بخوریم عذرا را گذاشتم ته خانه و سهم شما را آوردم که تا دا داغه بخورید آبگوشت خوبی شده بچه ها. نوش جانتان بوی آشنای عرق تن ننه با بوی دوست داشتنی آبگوشت قاطی شده بود و حالی به حالی هم می کرد. گفتم ننه جان دستت درد نکنه اکبر و اسخر هم خبر شدند و آمدند ننه صورت خاکالودشان را بوسید و با دیدن چشم سرخ اکبر لطمهی به صورت خود زد و عشق در چشمانش نشست و رفت دستمال بسته را آوردیم بشقاب رویش را که گوشت کوبیده میانش بود کنار گذاشتیم نان زیر کاسه را ترید کردیم ازخر یک لغمه از گوشت کوبیده خورد اکبر بامچهی توی سر ازخر زد و گفت اول باید گوشت را بخوریم چرا زودتر دست رازی کردیم مگر کسی تا به حال دست زده که تو زدی اشک از خر سرازیر شد و از روی گونه های خاکیش که از فشار لغمه برآمده بود گذشت ناراحت شدم و مشتی به سینه اکبر زدم اکبر با لگد جامع آبگوشت را به وسط حیات پرد کرد خون به صورتم دوید و دیگر ندانستم چه کردم مشتم را توی گوشت کبیده فرو کردم چنگش زدم و توی خاک ها پرد کردم هر سه به گریه افتادیم. استاد ونا از امویدالله پرسید: این بچه ها چه خبرشانه؟ چرا امروز اینطور مثل سگ و گربه به جان هم افتاده‌اند؟ امویدالله جواب داد: نمیدانم. شاید بر سر ارث پدرشان دعوا میکنند. شاید هم صندوق بدبختی را باز کرده‌اند. چشمانم را با آستین پاک کردم. قربال را برداشتم و به سوی های خاک را.